به نام خدای یگانه مهربان سلام. افسانه‌ها ها اشکاری از ویژگیه زندگی مردمند روابط انسان و روش برخورد ها رو با هم دیگه تذیر و تحلیل می کنند. تفسیرگر احساسات عمیق و ژرف آدمهان و در بطن خودشون تیگه قروم و احسار ساختار سیاسی اقتصادی و فرهنگی جوامع رو حفظ کرده. در بین افثانه های ملل، افثانه های ایرانی جایگاه ریجه دارند و در این این افثانه های آزری رنگ و بوگ دیگه دارند در برمیه این هفته هزار افسان، افسانی آزری رو براتون نرمی کنن به نام شمدانهای طلایی برگرفته از کتاب افسانه‌های های آزربایی ترجمه همیند بخشمند روزی روزگاری در گذشته های دور پادشاهی زندگی میکرد که به چشم درد شدیدی مبتلا شد و از شدت درد خواب و آرامش نداشته حکیمان بسیاری برای معالجه چشم پادشاه داوطلب شدن ولی هیچ کدوم درد پادشاه رو درمان کنند و فریاد آه و پادشاه همچنان در تمام قصر پیچید تا اینکه روزی وزیر با خوشحالی نزد پادشاه آمد و با هیجان گفت قربان قربان بالاخره یافتیم دیگه درد کشیدن شما تموم شد تموم پادشاه همونطوری که از شدت درد چشمهاش رو با کف دست میمالید با آه ناله گفت آه آه دیگه دیگه چی شده دیگه چی شده وای وای چشم خدایا یا مردم وای به بعد رو کرد به وزیر که خوشحالی توی صورتش پیدا بود گفت آه یکم مرهم بیار وزیر وای چشم چشم درست هدقه در میاد واا وزیر گفت قربان دیگه نیازی به من نیست یه حکیم توانا اومده و قول داده که چشم های قبله عالم رو معالجه کنه پادشاه با بی گفت آخ آه, آه, آه چشم تو هم باور کردی ها؟ آه این چندومین حکیمیه که این قول رو داده وای چشم به باز شروع کرد به آه و ناله کردن وزیر گفت قربان قربان این حکیم با حکیمایی دیگه فرق میکنه از قیافش معلومه که تشربی زیادی داره پادشاه کلام وزیر رو قطع کرد و بر سرش فریاد زد و گفت خاموش، گفتم مرهم رو بیار چشماتیش داره وای وای چشم بجم لانتی مرهم رو بیار وزیر با دست پاچکی گفت چشم قربان چشم از سائه و با شتاب از پادشاه دور شد و چند لحظه بعد با مرهمی در دست نزد پادشاه برگشت پادشاه با عصبانیت گفت سیماطر چی هستی مگه نمی‌بینیدم از درد به خدا می پیچم آه زرت باش لبوش مرهم رو روی چشمم وای خدا چشمم وای. وزیر با دست فچکی شروع به مالیدن مرهم به روی ششمای پادشاه کرد ولی درد پادشاه برطرف نشد که نشد و باز صدای آه و نالش توی فضای مجلل قصر پیچید همچنان از شدت درد آه و فقان میکرد و عاقبت طاقت نیاورد و فریاد زد اوه آخ اون اون اون حکیم رو بگید بیاد اون حکیم رو بگید بیاد بیاد و من از این درد لعنتی خلاص کنه بله وزیر با خوشحالی گفت چشم چشم قبله یالم چشم و با صدای بلند گفت آی حکیم رو بیارید زود باشید! چند لحظه بعد در اتاق پادشاه باز شد و حکیم که ظاهری آراسته و مرتب داشت در چارچوب در ظاهر شد پادشاه در حالی که چشمش از شدت درد متورم شده بود گفت بیا بیا در بیا در حکیم جوان با قدمهای آهسته و شمرده جلو رفت و ادای احترام کرد و بعد به چشمهای متورم پادشاه خیره شد پادشاه گفت چی هستی حکیم؟ زود باش چه چشم زود باش دست مکاش و دارم از درد گل میشم و بعد با لحن غمگینی به حکیم جوان گفت میبینی چه برمی کرده حکیم روز و شب حکیم چشم های پادشاه رو ماینه کرده گفت لیه آورم به سلامت باد من میتونم چشمای شما رو درمان کنم فقط پادشاه با هایی از جاش پرن شده گفت حکی خواهی در از دیارت بیزاره حکیم گفت قربان چشمای شما به داروی احتیاج داره که پیدا کردنش خیلی مشکله خیلی خیلی خیلی پادشاه گفت هر دارویی باشه دستور میدم، پیداش کنن، هر دارویی، و وزیر تسلیح کنن سری تکون داد و اضافه کرد، بله، بله، ما پیداش میکنیم، حکیم گفت، قربان در دریای سفید ماهی خالداری وجود داره که اگه اونو پیدا کنین و از خونش به چشماتون بمالین شما شفا پیدا میکنین پادشاه با شنیدن این حرف حکیم دستور داد تمام ماهیگیرها در ساحل دریای سفید جمع بشن ویلوی در شهر پیچید که بیا و بمید دو صبح پادشاه تنها پسرش رو صدا زده گفت پسر هم از بین این ماهیگیره ادهی رو انتخاب کن و دستور بده تا وقتی که ماهی خالدار پیدا نشده تمام ماهی های دریارو بگیرن و به ساحل بریزن پسر هم دستور پدر رو اطاعت کرد و به ماهیگیرا چنین گفت خوب گوش کنین ببینین من چی میگم هر کی بتونه ماهی خالدار سید کنه پدر من پادشاه و این سرزمین اونو از مال دنیا بینیاز میکنه ماهیگیرا با شنیدن این حرف به تکاپو افتادن و شروع به کار کردن و با تورهای دسته دست دست رو گرفتن و به ساحل ریختن این کار تا چندین روز ادامه پیدا کرد تا عاقبت ماهی خالدار سید شد ماهیی را به دور ماهی خالدار حلقه زدند. پسر پادشاه از راه رسید و وقتی چشش به ماهی خالدار افتاد از اون همه زیبایی شگفت زده شد و دلش نایمد که ماهی را بکشه و لحظه ای مردد موند. ولی یاد پدرش افتاد که در انتظار خون این ماهی خال داره بنابراین با دریغ و افسوس چلو رفت تا سر ماهی خالدار رو ببوره که یهو ماهی خالدار زبون باز کرد و گفت ای جوون، منو نکش یه روزی به دردت میخورم خواهش میکنم منو نکش شاهزاده به چشمه زیبا و درخشان ماهی خالدار که التماس و خواهش در اونا موج میزد خیره موند و با خودش گفت آه شاید یه روزی چشای پدرم به خودی خودش خوب بشه و دیگه نیازی به درمون نداشته باشه حالا که این ماهی زیبا اینجوری از من خواهش میکنه بهتر اونو نکشم و توی دریا بندازم پسر اینو گفت و ماهی خالدار رو تو دریای پسر پادشاه بعد از اینکه ماهی خالدار رو به دریا انداخت روی کرد به مانگیلا و تهدید کنن گفت خوب گوشاتون رو وا ها اگه کسی از شماها این راز رو جایی فاش کنه دستور میدم گردنش رو بزنن فهمیدین؟ ماهیگی قسم خوردن اون که دیدن جای بازگون نکنن و پسر پادشاه هم دستمزد تمام اونا رو پرداخت و اونا از ساحل دریای سفید پراکنده شدن پسر پادشاه هم با ظاهری نومید و افسرده پیش پدرش رفت و گفت پدرجان هرچه ماهی تو دریا بود سید کردیم و به ساحل ریختیم ولی ولی متاسفانه ماهی خالدار پیدا نشد که نشد پادشاه که چشمش همچنان درد میکرد و چاری جز سوختن و ساختن نداشت باز آه و فقان و نالش از شدت درد توی تمام فضای قصر پیچید مدتی از این ماجرا گذشت آقابت روزی سخنچینی نزد پادشاه رفت و گفت قبله عالم به سلامت باد ماهی گیرا، ماهی خالدار رو سید کردن قبله عالم. ولی تنها پسرتون ماهی رو انداخت دریا پادشاه که انتظار شنیدن چون این رو نداشت چنان عصبانی شد که کم مونده بود دیوونه بشه و فورا دستور قتل پسرش رو صادر کرد وزیر و اطرافین نزد پادشاه رفتن و ازش خواهش کردند از کشتن تنها پسرش چشبوشی کنه ولی پادشاه که هنوز خشمش فروکش نکرده بود با قاطعیت گفت آه. آه. افی وجود نداره پسرم با این کارش ثابت کرد که در انتظار مرگ منه تا تاج و تخت منو صاحب بشه پسر یه نمچ به اطرافیان باز هم اصرار کردند و از پادشاه خواهش کردند. حداقل در مجازات شاهزاده تخفیفی بده و یا اونو به جای دور تبیید کنه پادشاه هم بر اثر خواهش و اصرار اطرافیان کمی نرم شد و دستور داد پسرش را از قلمرو حکومتش خارج کنن و شاهزاده هم همون روز از شهر بیرون شاهزاده رفت و رفت و رفت و در مسیر راه خودش به پسر عوونی برخورد. پسر با مهربونی به شاهزاده گفت مثل اینکه راه من و تو یکیه. آیا حاضری با هم رفیق و همسفر بشیم؟ شاهزاده با خوشحالی گفت البته که حاضرم. از این لحظه ما با هم همسفر رو برداریم. و هر دو پا به پای هم به راه افتادن. بعد از اینکه مسافتی با هم تهی کردن پسر جوان از شاهزاده پرسید شغل تو چیه؟ چی ای؟ شاهزاده آهی کشیده گفت آه من شغل خاصی ندارم تو چی کاره ای؟ پسر پاسخ داد من حکیمم ما با هم دیگه تموم جاها رو هر هرچی کاسب شدیم با هم نصف میکنیم شاهزاده از اینکه با این حکیم جوون هم سفر شده بود در دل خوشحال بود ساعتی بعد اونا به شهری رسیدند دم دروازه شهر مردی رو بر سر داراویخته دیدند بعد از پرسوجو معلوم شد که مرد به داراویخته حکیمی بوده که نتونسته بود دختر حاکم شهر رو که هفت سال تموم لال شده مالج که دستور حاکم به داراویخته شده بود پسر جوون یا همون حکیم وقتی این ماجرا رو شنید به همراه شاهزاده نزد حاکم شهر رفت و بعد از عدای احترام گفت قربان بنده برای مالجه ی دخترتون خدمت رسیدم حاکم پوسخندی زد و به تلخی گفت <تصفح> <تصفح> ای حکیم جوون تا به حال چهل حکیم برای مالجه دخترم به اینجا آمدن ولی هیچ کدوم نتونستن کاری از پیش ببرن تازه سر خودشونم به باد دادن حالا تو حکیم به تندی گفت قبلهٔ آدم به سلامت باد من از مرد نمیترسم و به تبابت خودم اطمینان دارم حالا اگه اجازه بدین دخترتون را از نزدیک ببینم حاکم دستور داد حکیم جوان و همراهش رو که همو شاهزاده بود برای معالجه به اتاق دخترش ببرند و خود و اطرافیان هم در گوشهای دور از چشم حکیم جوان مراقب شدند حکیم جوان به محض ورودش به اتاق دختر حاکم بدون کوچکترین توجهی به دختر در گوشه ساکت و آروم نشسته بود یه راست به سراغ دوتا شمدونی تلایی گوشه اتاق رفت این شمدونهای طلایی برای دختر حاکم خیلی عزیز بود چون از مادرش به یادگار مونده بود دختر حاکم بعد از مرگ مادرش با خودش عهد کرده بود که هفت سال تمام کلام به زبون نیره حکیم جوان به شمدونی های نزدیک شد به خطاب به اونا گفت سلام ای شم دنیای تلایی من امشب مهمون شما هستم و میخوام براتون قصه ای رو تعریف کنم شما باید به قصه من خیلی خوب گوش کنین تا بتونین به سوالای من جواب بدین و بعد شروع کرد به تعریف قصه و گفت ای شم دنیای تلایی روزی یه نجار یه خیاط و یه حکیم با هم همسفر شدن غروب به جنگلی بزرگ رسیدند و چون می‌ترسیدند طعمه حیوانات وحشی بشن تصمیم گرفتن به نوبت نگهبانی بدن شب که شد اولین کسی که نگهبانی داد نجار بود چند ساعتی گذشت نجار موقع نگهبانی برای اینکه حوصله‌اش سر نره وسایل کار خودشو برداشت و از چوب مجسمه دختری رو ساخت پاسی از شب که گذشت نوبت نگهبانی به خیاط رسید خیاط هنگام نگهبانی چشاش به مجسمی چوبی دختر افتاد و فهمید کار کار نجاره بلی این اونم هنر خودش رو نشون بده نخ و سوزن و غیچی خودش رو در برد و یه دست لباس دخت و تن مجسمی چوبی دختر کرد دم دمای صبح نوبت نگهبانی حکیم رسید حکیم هم هنگام نگهبانی مجسمی دختر رو دید اونم برای نشون دادن علم و دانش خودش داروی به دختر داد و مجسمه تبدیل به دختری زنده شد وقتی سپیده سر زد و از خواب بلند شدن نجار گفت اولین بار من بودم که این دختر رو از چوب ساختم بنابراین این دختر متعلق به منه خیاد گفت نه نه نه نه نه, نه. این من بودم که برای اون لباس دوختم و اونو پوشوندم اگه از روی انصاف رفتار کرده باشیم این دختر متعلق به منه و صاحب اون منم و بالاخره حکیم به سخن اومد و گفت زنده شدن دختر کار منه چرا که به غالب بیروه اون من جون دادم بنابراین صاحب حقیقی دختر منم نه شما ها بالاخره کار به دعوا کشید حالا ای شمدونیای طلایی شما بگید ببینم اون دختر متعلق به کدوم یک از اون سه نفره از شمدونیای طلایی جوابی شنیده نشد حکیم گفت ای شمندونه طلایی ای اگه جواب سوال منو ندین چنان با چوب به سرتون میزنم که قطع قطعه قطعه بشین باز هم جوابی از شمندونی ها به گوش نرسید حکیم چوب رو بلند کرد تا بر سر شمیا بکوبه که کاسیگ صبر دختر حاکم لبریز شد و گفت ای جوون مگه ها میتونن حرف بزنن با اونا کاری نداشته باش من جواب سوالی رو میدم حکیم با خوشحالی گفت، آها، بگو ببینم، جواب درسته یا نه؟ دختر حاکم گفت، نجار و خیاط هر دو زحمت کشیدن و باید مزد خودشون رو دریافت کنن، اما کسی که به دختر جون داد و زندش کرد حکیمه، و این کار نمیشه با پول معاوزه کرد، بنابراین صاحب دختر حکیمه، نه نجار و نه خیاط حاکم و همراهانش وقتی هر دختر رو شنیدن وارد اتاق شدند و از حکیم جوان تشکر کردند و به پاس این خدمت بزرگ به حکیم پادشاه گفت ای حکیم من حاضرم دخترم رو به عقد تو در بیارم اگرم تمایلی به این کار نداری به هر کسی که خود صلاح میدونی شوهر بده حاکم دخترش رو با جهیزه بسیار و تعدادی خدمتکار به حکیم سپرد و فردای اون روز حکیم و دختر و شاهزاده از قصر حاکم بیرون مدن و براه افتادن. حکیم دختر و شاهزاده در گذر از راه های پرپیچ و خم عاقبت به کنار دریای سفید رسیدن وقتی داشتن از اونجا رد می دختر حکیم به حکیم گفت ای حکیم تو با حیله و نیرنگ منو به حرف زدن وداشتی و باعث شدی که من عهد و پیمان خودم بشکنم. حالا میخوام بدونم تو واقعا کی هستی و منو رو به کجا میبری؟ حکیم گفت من پسر پادشاه ماهی ها هستم من میتونم به هر لباسی دربیم. روزی تو دریای سفید مشغول شنا کردم بودم که ماهیگیران من با تور گرفتن خون من شفای چشم پادشاه بود این جوون رو که کنار من میبینی اون به جای کشتن من منو از دست مایگیرا گرفت و دوباره تو دریا انداخت به پاس این خدمت من تو رو به این شاهزاده میدم از امروز تو خواهن و شاهزادم داماد منه من دیگه باید از پیش شما برم هر وقت کاری با من داشتین به ساحل دریای سفید و صدام کنین اون وقت منو کنار خودتون میبینین حکیم اینو گفت و مقداری از خون خودشو تو شیشه ریخت و به دست شاهزاده داد و گفته این رو هم ببر و به چشمای پدرت به مال تا شفاه پیدا کنه حکیم از شاهزاده و دختر خداحافظی کرد و به شکل ماهی در اومد خودشو تو دریا انداخت و ناپدید شد شاهزاده و همراه و دختر به کشور خودش برگشت و پیش پدر و مادر خودش اومد بعد از دیدار خون ماهی خالدار رو به چشمای پدرش مالی تا شفا پیدا کنه پادشاه بعد از بهبودی چشاش مجلس شادی تدارک دید و دستور داد تمام شهر رو آزین ببندن و چراغونی کنن بعد پادشاه پسرش رو به جای خودش بر تخت شاهی نشوند و چهل شبان روز مجلس جشن و عروسی برپاده افسانه شمدانه های طلایی رو براتون نقل کردم. از کوانترین ایام از وقتی که مادر و مادربزرگ یا پیر خورده ای در جهان بوده، افسانه هم بوده. انسان در قصه و افسانه آرزوهای سرکوب شده و سرنوشت نیاکان خودش رو جستجو میکنه. در واقع آرزوها و درونیات خودش رو در واجه های اون پنهان میکنه. با پاس داشته های کشورمون در واقع بخشی از نیراس فرنگی مردمان سرزمین اون رو حفظ کردیم این مرمومه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالحپور مراستار افثانه هرمانزاده اجرا مهران دوستی سبابردار مهدی حدادی و تیگه کننده زهرا عبدالله زاده با افثانی دیگر به